راز جواهرات چشمه این داستان نقلیست از آقای بهروز حسین آبادی از کرمانشاه یکی بود یکی نبود غیر از خدای مهربون هیچکس نبود شهری بود که پادشاهی پیر داشت شهر بسیار آباد بود و هیچ وقت پادشاه دچار مشکلی نمیشد که نتونه اونو حل کنه پادشاه بسیار به افراد پیر احترام میذاشت و از اونا مواظبت میکرد از غذای روزگار یه شب پادشاه پیر خوابی و دیگه بیدار نشد پسرش که بسیار جوون و قوی بود جانشین اون شد بعد از گذشت چند ماه و فراموش شدن یاد و خاطره پادشاه پیر پادشاه جوون وزیرا رو صدا کرد و گفت این شهر پر شده از آدمای پیر و ناتوان اینا به هیچ دردی نمیخورن نمیتونن کاری بکنن نمیتونن بجنگن وزیراش گفتن اینا تجربه های خیلی زیادی دارن و حتما یه جایی به درد مملکت ما میخورن ولی پادشاه جوان قبول نکرد و گفت اینا رو همه رو از شهر بیرون کنید. اون به سربازاش دستور داد هرچی آدم پیر هست بگیرن و از شهر بندازن بیرون بفرستنشون بیابون تا از گرسنگی بمیرن یا به دست حیوانات درنده در کشته بشن. حتی گفته بود اگه توی خونه‌ی پیری رو پیدا کنم تمام افراد اون خونه رو میکشم. پسر جوونی بود که پدر پیری داشت هر کاری کرد دلش نمی‌آمد پدرش را از خونه بیرون کنه پس اونو توی زیرزمین خونشون پنهون کرد مدت‌ها گذشت و همچنان پسر پنهونی از پدرش توی زیرزمین نگهداری می‌کرد توی شهر چشمه‌ای بود که هر وقت آفتاب می‌تابید پر می‌شد از جواهرات ولی جواهران اونقدر سنگین بودن که هر کس میخواست داخل چشمه بشه یا اونا را از اونجا در بیاره زورش نیمی رسید سالها گذشت و در اثر بیلیاقتی و ولخرجی های پادشاه جوان وضع مملکت خیلی خراب شد و در خزانه پادشاه هیچ پولی نموند از طرفی در اثر خشکسالی کشاورزی هم محصول خوبی نداشت مردم گرسنه نبودن و دشمنم که وضع مملکت را خراب دیده بود میخواست که به اونا حمله کنه. پادشاه جوان هر کاری به نظرش رسید کرد تا اوضا خوب بشه ولی نتونست پولی به دست بیاره. تمام فکر و ذکرش شده بود جواهرات داخل چشمه. این بود که دستور داد تمام مردم تلاش کنن تا بتونن اون را از توی چشمه بیرون بیارن. همین که صبح آفتاب میزد جواهرات داخل چشم ظاهر میشدن ولی هیچکس نمیتونست نمیتونه از تو چشم بیرون بیاره و دست خالی برمیگشت. پادشاه جوان هم گفت هر کس بتونه جواهرات داخل چشم رو بیرون بیاره هر کاری از من بخواد را براش انجام میدم. پسر جوون که پدرش رو توی زیرزمین پنهون کرده بود شب برای پدرش موضوع رو تعریف کرد و از اوضاع بد مردم گفت و اینکه نمیتونن این جواهرات رو از چشم بیرون بیارن و اینکه اگر نتونن جواهرات رو بیرون بیارن چی پیش میاد؟ پدر پیرش گفت من راز جواهرات رو میدونم این راز رو خیلی از پیرای دیگه هم میدونستن و قول و قرار گذاشتیم به جز زمانی که واقعا مملکت نیاز داشت این راز رو فاش نکنیم برو به پادشاه بگو یه نفر هست راز چشمه رو میدونه پسر به پدرش گفت اگه پادشاه تو رو ببینه که حتما جفتمونو میکشه. پیرمرد گفت ایبی نداره من حاضرم برای نجات مردم و مملکت هر کاری بکنم حتی جونم رو فدا کنم پسر نزده پادشاه اومد و ماجرای پدرش رو برای اون تعریف کرد پادشاه که اوزار رو مناسب نمیدید گفت برو و سری اون آدم رو بیار پسر رفت و پدر پیرش رو آورد پادشاه تا پیرمرد رو دید گفت: یه پیرمرد این دیگه کجا بود؟ پیرمرد گفت: ای پادشاه حالا وقتی این حرفا نیست من راز جواهرات رو میدونم و می خوام که مردم کشورم رو نجات بدم در ادامه گفت صبح که آفتاب بیرون میاد اول به کوه میتابه جواهراتی که شما تو چشمه میبینین تو کوه هستن و اون تابش نور جواهرای کوه که تو آب چشمه میافته چند جوان رو به بالای کوه بفرستید تا جواهرات رو پایین بیارن پادشاه چند نفر رو به کوه فرستاد و اونا جواهرات رو درون غاری پیدا کردن و نس پادشاه آوردن. وقتی چشم پادشاه به طلا و جواهرات افتاد به ارزش و اهمیت پیرها پی برد و از اون روز به بعد به پیرها احترام گذاشت و از اونا تو کارهاش راهنمایی خواست.